سوره احضا به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است ای پیامبر حرمت خدا را نگاه دار و از کافران و منافقان اطاعت مکن بدان که خداوند آگاه و حکیم است از آنچه از نزد پروردگارت به تو وحی می شود تبعیت کن که خداوند از عمل باخبر است به خدا توکل کن زیرا کارسازی او کافی است و به چیز دیگری نیاز نیست خداوند برای هیچ کس دو قلب درونش قرار نداد است خداوند همسرانتان را که مورد زهار قرار می دهید مادرانتان قرار نداده است همچنین فرزند خانده هایتان را فرزندان شما قرار نداده است این سخن شماست که به دهان خود می گویید. خداوند حق را میگوید و اوست که مردم را به راه درست هدایت می کند آنها را به نام پدرانشان بخوانید و به آنها نسبت دهید که این نزد خداوند آدلانه است و چنانکه که پدرانشان را نمی برادران دینی و دوستان شما خواهند بود اگر پیش از این در این موارد خطایی کرده اید بر شما گناهی نیست ولی اگر تعمدن بگویید مورد بازخواست خواهید بود بدانید که خدا آمور زنده با است پیامبر نسبت به اهل ایمان از خودشان سزاوارتر است و همسران پیامبر مادران مؤمنان هستند و در کتاب خدا خویشاوندان نسبی به یکدیگر سزاوارتر از مؤمنان و مهاجران دیگر می باشند مگران که بخواهید نسبت به یکی از دوستانتان نیکی کنید که این در کتاب خدا نوشته شده است به یادار هنگامی که از پیامبران پیمان گرفتیم از تو و از نوح و ابراهیم و موسا و ایسابن مریم بدانید از همه آنها پیمان محکمی گرفتیم تا خدا راستگویان را از صداقتشان بپرسد و برای کافران به سبب دروغ و کتمان حقایق عذاب دردناکی را مهیا کند ای اهل ایمان به یاد آورید نعمتهایی را که خدا به شما عطا کرده است آن هنگامی که لشکریانی به سوی شما آمدند و ما باد مرگ بار را با سپایی که نمی دیدید آنها فرستادیم و شکستشان دادیم بدانید که خداوند نسبت به عمل کردتان بیناست یاد آورید هنگامی که از بالا و پایین شهرتان بر شما تاختند همان زمان که چشم ها از وحشت مبهوت بود و جان ها به لب رسیده بود و شما گمان های بدی به خدا بردید در آنجا اهل ایمان امتحان شدند و به شدید تنین بچی لرزیدند همان هنگام که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری کفر و نفاق بود گفتند خدا و پیامبرش به ما وعدهای ای فریب ندادند و به یاد آورید هنگامی که گروهی از آنها گفتند ای اهل مدینه اینجا جای شما نیست به خانه هایتان برگردید حتی عددیی از آنها از پیامبر اجازه میخواستند و میگفتند بر آستی خانه های ما بدون حفاظ است در حالی که بدون حفاظ نبود آنها فقط میخواستند از جهاد فرار کنند و اگر دشمنان از هر سو خانهایشان را محاصره میکردند و پیشنهاد میدادند که از دین برگردند آنها قبول میکردند و جز اندکی درنگ روا می داشتند. آنها قبلن با خدا پیمان بسته بودند که به دشمن پشت نکنند بیشک خدا از پیمانی که با او بستند همه آنها را باسخاست خواهد کرد بگو فرار برای شما سودی ندارد اگر از مرگ یا کوشته شدن بگریزی جز مدت اندکی از زندگی دنیا بهرهمند نخواهید بود بگو چنانچه خداوند قصد بدی برایتان داشته باشد و یا بخواهد رحمتی اطایتان کند چه کسی مانع اوست مسلمن غیر از خدا هیچ یا و نخواهند یافت خدا خوب میداند چه کسانی از شما مردم را از جهاد باز می دارند. و نیز خوب می‌شناسد کسانی را که به برادرانشان می‌گویند نزد ما بیایید به جهاد نروید. و جز اندکی به جهاد نمی‌آیند. آنها نسبت به هر چیزی بر شما بخل می برزند هنگامی که لحظات وحشت و استراق فرار رسد که آنها به تو می‌نگرند. آن هم با چشمانی که از ترس در هدقه می گردد. درست مثل کسی که از خوف مرگ بیهوش شده باشد و انگامی که وحشت و استراب از بین می رود، از حرس غنایم با زبانهای تیزشان شما را می آزارند اینان به حقایق ایمان نیاوردند بنابراین خدا عمل را باطل می کند و این کار بر خداوند آسان است آنها میپندارند، هنوز لشکر احزاب نرفتند. چنانچه نیروهای احزاب دوباره بیایند، آنها آرزو میکنند که در میان اعراب بادی نشین باشند، سر به بیابان بگذارند و فقط از وضع شما خبر بگیرند و اگر هم در میان شما بودند، جز اندکی پیکار نمیکردند. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رسول الله برای شما یک قول خوب است نه تنها برای شما بلکه برای هر کسی که به خدا و روز قیامت دلبسته بسته و خداوند را زیاد یاد می کند. اما هنگامی که اهل ایمان لشکریان و احزاب را دیدند گفتند این همان چیزی است که خداوند و پیامبرش به ما وعده دادند و هم خدا و هم پیامبرش راست گفتند و این ماجرا جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزاید از اهل ایمان مردانی هستند که بر سر پیمانشان با خدا صادقانه ایستادند ادهی پیمان خود را به آخر بردند و ادهی دیگری در انتظارند و هرگز دنبال راه فرار نسبت به عهد و پیمانشان نگشتند و آن را به چیز دیگری تبدیل نکردند تا خداوند صادقان را به پاس صداقتشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد مجازات نماید یا توبهشان را بپذیرند زیرا خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است خداوند کافران کین توز را عقب زد و آنها هیچ نتیجه ای از کار خود نگرفتند و خدا اهل ایمان را از پیکار بینیاز کرد زیرا خداوند قدرتمند و شکست ناپذیر است و خدا ادده از اهل کتاب را که مشتکان را حمایت می کردند از قلعه های مستحکمشان پایین کشید و در دلهایشان وحشت انداخت تا سر انجام شما برخی از آنها را کشتید و برخی دیگر را اسیر کردید و خدا زمین و خانه ها و انبال آنها و حتی سرزمینی را که در آن پا نگذاشته بودید در اختیار شما گذاشت و خداوند بر همه این کارها توانا بود ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواستار زندگی دنیا و زینت آن هستید بیایید حدیهی به شما بدهم و به خوبی رایتان کنم. و اگر خواهان خداوند و پیامبر و آخرت هستید بدانید که خداوند برای زنان نیکوکار پاداش بزرگی تدارک دیده است ای همسران پیانبر، چنانچه هر کدام از شما مرتکب گناه آشکار و فاهش گردد از دو برابر خواهد بود و این کار بر خداوند آسان است. و اما هر کس از شما فرمان بردار خدا و پیامبرش باشد و عمل کردی نیک و شایسته داشته باشد دوبار به او پاداش اتا خواهیم کرد و برای او رزق پرارزشی را تدارک دیده ای. ای همسران پیامبر شما چون یکی از زنان معمولی نیستید، اگر حرمت عوامر الهی را نگاه میدارید نباید به ناز سخن بگویید. مبادا کسانی که قلبشان از وسپسه شیطانی بیمار است در طمع بیفتند، بلکه همواره خوب و شایسته سخن بگویید. در خانه بمانید و چون جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز به پای دارید و زکات پرداخت نمایید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید زیرا خداوند می پلیدی و آلودگی را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را تطهیر نماید و از آنچه از آیات الهی و نکات حکمتامیز در خانه شما تلاوت می شود یاد کنید که خداوند نکته سنج و آگاه است. خدا برای مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان فرمانبردار، مردان و زنان باصداقت، مردان و زنان اهل صبر، مردان و زنان متواضع، مردان و زنان صدقه دهنده، مردان و زنان روزه مردان و زنان با افت و پاکدامن، و مردان و زنان اهل ذکر الهی مغفرت و پاداش بزرگی تدارک دیده است هیچ مرد و زن با ایمانی سزاوار نیست وقتی خدا و پیامبر دستور به کاری میدهند از خودشان خود مختاری نشان دهند زیرا هر کس در مقابل خدا و پیامبرش نافرمانی کند بیشک در گمراهی آشکار افتاده است به یاد هنگامی که آن کس که خدا به او نعمت داده بود و تو نیز نعمت داده بودی گفتی همسرت را نگاه دار و از خدا بترس در حالی که در دل خود چیزی را مخفی می کردی که خدا آشکارش نموند و تو از مردم می در حالی که خدا سزاوارتر است که از او بترسی. و سنگامی که زید همسرش را طلاق داد او را به همسری تو درآوردیم تا مشکل اهل ایمان در مورد ازدواج با همسران پسرخندانشان پس از آنکه طلاق گیرند برطرف شود بدان که فرمان خدا شدنی است بر تایامبر در مورد آنکه خدا بر او مقرر کرده است جرمی نیست این سنت الهی برای کسانی که پیش از این بودند نیز وجود داشت بدانید که عوامر خداوند دقیق و حساب شده است کسانی که پیام‌های الهی را به مردم می‌رسانند و فقط از خدا میترسند و از اهدی غیر از خدا نمی ترسند، همین بس که خداوند حسابگر اعمال نیک آنهاست. محمد پدر هیچ کدام از مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند بر چیزی آگاه است. یا ایوها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا و صفحوه بکرتا و ای اهل ایمان خداوند بزرگ را بسیار یاد کنید و هر صبح و شام او را تسبیح گویید او کسی است که بر شما درود میفرستد. فرشتگان او نیز اینچنین چنین می کنند تا شما را از تاریکی های جهل و گنا به نور آگاهی و حقیقت هدایت کنند بدانید که خداوند نسبت به اهل ایمان با رحمت است تحیت آنها روزی که خدا را دیدار کنند سلام است و بدین سان پاداش پرارزشی برای آنها مهیا ساخته است ای پیامبر، ما تو را هم به عنوان شاهد و هم به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاده به فرمان خداوند، تو را دعوت کننده مردم به سوی خدا و نیز چراغی روشنگر قرار دادیم اهل ایمان را مجدر رسان زیرا برای آنها از سوی خدا پاداشی بزرگ است و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزار و عزیت آنها اعتناعی نداشته باش و بر خدا توکل کن زیرا خداوند برای دفاع از تو کافی است ای اهل ایمان اگر زنان مؤمن را به عقد خود درآوردید و خواستید پیش از آن که با آنان آمیزش داشته باشید تلاقشان دهید شما را بر آنها ادهی نیست که بخواهید حسابش را نگاه دارید پس با ای شایسته آنها را به نیکوترین بچی رها سازید ای پیامبر ما زنانی را که مهر آنها را پرداخت کرده ای بر تو حلال نمودیم همچنین آنان که به عنوان غنایم خداوند به تو عطا کرده و نیز دختران عموها و دختران امهها و دختران دایی و دختران خاله هاید که با تو اجرد کرده هند. و نیز هر زن مؤمنه که خود را به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به همسری بگیرد فقط ویژه توست نه مؤمنان دیگر زیرا ما میدانیم چه حکمی برای آنها در مورد همسرانشان و کنیزانشان کرده ایم. این این به خاطر آن است که برای تو مشکلی پیش نیاید بدان که خداوند آمرزنده و بارحمت است موعد هر کدام از همسرانت را که بخواهی میتوانی به تأخیر بیندازی و هر کدام را که بخواهی نزد خود آوری هرگاه بخواهی یکی از آنان را که موعدشان را به تاخیر ای نزد خود جای دهی بر تو گناهی نیست این حکم الهی برای روشنی چشم آنان است و غمگین نشوند و با آنچه در اختیار همگی آنها قرار میدهی باید راضی باشند خداوند از آن که در دلهای شما می‌گذرد آگاه است بدانید که خدا آگاه و بردبار است بعد از این زمان دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمی توانی همسرانت را به زمان دیگری تبدیل کنی آنها را طلاق دهی و زنان دیگری به جایشان عقد کنی هرچند حسن آنها مورد پسند تو واقع شود مگر کنیزی که تحت سرپرستی تو درآید بدان که خداوند مراقب همه چیز است ای اهل ایمان به خانههای پیامبر داخل مشوی مگر آنکه شما را به خوردن تعامی دعوت کرده باشد، مشروط بر آنکه در انتظار آمدن غذا ننشینید زودتر از موعد مقرر نیایید اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و انگامی که غذایتان را کردید پراکنده شوید و به حرف و سخن منشینید این چون این کاری را آزار میدهد چون از شما حیا می کند بروید اما خداوند در مورد بیان حق ندارد و اگر چیزی از وسائل زندگی به عنوان آریه از همسران پیامبر خدا خواستید از پشت پرده بخواهید این کار دلهای شما و دلهای زنان پیامبر را پاکیزه می‌دارد. نباید پیامبر خدا را بیازارید و نیز هرگز بعد از او همسرانش را به همسری خود در نیاورید که این کارها نزد خداوند بزرگ است بدانید اگر چیزی را آشکارا انجام دهید و یا پنهانش دارید خداوند از همه چیز آگاهی کامل دارد بر همسران پیامبر گناهی نیست اگر نزد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و برادرزاده و خوهرزاده و زنان مسلمان و خدمتگزاران خیش بدون حجاب باشد. حرمت اوامر الهی را نگاه دارید. زیرا خداوند بر همه چیز گواه است. ان الله وما لكتموا على عن النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <سلم> خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند ای اهل ایمان شما نیز بر او درود بفرستید و سلامی شایسته کنید و همواره تسلیم او باشید. کسانی که خدا و پیامبرش را آزار می‌رسانند، خداوند آنها را در دنیا و آخرت نفرین کرده و برایشان عذاب خار ای تدارک دیده است. کسانی که مردان و زنان اهل ایمان را به خاطر کاری که انجام ندادند آزار می‌رسانند. بار تهمت و گناه آشکاری را به دوش می ای پیامبر به همسرانت و دخترانت و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش را بر خود فرو افکنند این کار برای این است که شناخته شود مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند و اگر قبلا خطایی کردند بدانند که خدا همواره آموزنده و باگذشت است اگر منافقان و کسانی که در قلبهایشان بیماری و شیطانی است همچنین آنها که شایعات دروغ و بیاساس در مدینه منتشر می کنند، از کارهای خود دست بر ندارند تو را چنان بر آنها مسلط می کنیم که جز اندکی با تو در شهر نباشند. اینها نفرین شدگانند هر جا یافته شدند باید دستگیر گردند و به قتل رسند این سنت الهی است که در اقوام پیشین نیز بوده است و برای سنت الهی هیچ دگرگونی نخواهی یافت مردم از تو درباره زمان وقوع قیامت می پرسند. بگو آگاهی از آن فقط نزد خداوند است و تو چه دانی شاید که روز قیامت نزدیک باشد؟ خداوند کافران را نفرین کرده و برایشان آتش دوزخ را معیانه موده است. در آن جاودانه خواهند ماند در حالی که هیچ یا ریاوری پیدا نمی کنند. روزی که صورتهایشان را در آتش دگرگون کنند گوگند ای کاش ما هم خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم و گوگند پروردگاه را ما سروران و بزرگان خودمان را اطاعت کردیم و آنها ما را از راه حق گمراه کردند پروردگارا به آنها دو برابر از رساند و نفرین بزرگی را شامل حالشان گردان ای کسانی که به عقایق ایمان آورده اید مثل کسانی نباشید که موسا را آزار رساندند بدانید خداوند از آنچه که به اون نسبت می مبرایش ساخت سا و نزد خدا آبرومند بود ای اهل ایمان حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و همواره سخن متین بگویید خداوند کارهای شما را اصلاح می کند و از گناهانتان میگذرد بدانید که هر کس از خداوند و پیامبرش اطاعت کند به پیروزی بزرگی دست یافته است ما این امانت الهی را بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه کردیم اما آنها از تحمل آن سر باز زدند و از قبول آن ترسیدند اما انسان آن را به دوش گرفت زیرا او ستمکار و نادان بود تا خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشک را مجازات نماید و توبه مردان و زنان اهل ایمان را بپسیرد زیرا خداوند آمرزنده و باگذشت است ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات و کان الله غفورا رحیما صدق الله العلي العظيم خداوند بلند مرتبه بود از